و آرایش خانم ها این هم پرسیده شد و این هم میگیم حالا لباس نگینداری ای که امید آیا لباس های نگیندار جائزن یا جایز نیستن در این مورد لباس نگیندار بگم بعد آراش خانم ها رو هم بگم که چگونی آرائش کنند و نوعک ما آرائشگر نیستیم احکام اشاری شو بگم حالا فکر کنیم به تعلیم آرائشگری بدیم اول لباس نگیندار استفاده لباس نگیندار یا زینت برای خانم مستحب هست لباس نگیدر مستحب نیست آرایش برای خانم آرایش کردن خانم مستحب است که برای همسرش خودشو آرائش کنه حالا در مورد آرائشات بگم که خانم ها باید که باید بکنند متاسفانه دی. اینها دیگه جاهای نادرست است ها فقط در مراسم عروسی ها. مراسم عروسی ها جای برن دعوتی که اونجا آرایش هم باشه نمایش هم باشه اونجا دیگه هست اما تخونه خونه ازادارن تو خونه همه خانوما در لباس کهنه خونه هستند همون لباسهایی که اصلا بو هم داشته باشند، حالا تو خونه ازادار توی داخل عدت مرگ شوهر این اینجوری دارن زندگی میکنن اما واقعا اسلام این چیزو قبول داره یا نه نه اسلام نمیگه اینجوری زندگی کن بیگه خود تو آرایش کن زیبا بکن برای همسرت اون کسی که باید محبت داشته باشه اون که کسی باید به پیش تو برسه پیشو خود تو زیبا بکن هر چه رنگداری هر چه خیلی مبالی، کلانی رو به خاطر گرفته رنگمنگ ها میگیرن از آقایون هم میگیرن اما این رنگ برای اجانب به کار پولش آقا میده اما لذت کسی دیگه میبره این درست نیست اینها باید کسی کرج کرده. اولی حدیثی حدیث بخونه برای شما داخل سنن ابی داود اومده شخصی خانمی آمد پیش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم نا... نامی آورد دستشو پشت پرده نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم رو نگرفت بفر فرمودن که یا رسول الله من نامی آوردم پیش شما و شما هم تحویل نگرفتی و دستو دراز کرد فرموده که حالا این دست شد من ندونه ساره این دست دست خانومی دست مردیه. بعد فرمودن که دست تو تغییر بده انگشتا رو با رنگ با حنا تغییر بده آراهش کنید بدون این مردی است یا خانومی هست پس اینها همیشه خانوم‌ها اینجوری هستند رو با عکس بگیرن علاق دست کدونشون معلوم نمیشه چون خیلی از آقایون که بس که تو طرفو زندگی میکنن زیاد خشی نمیدن دست‌ها. اسم خانوما میشن. فرمود بود این نه تغییر انگشتا تغییر بده و حنا بزن اونجا نبی مکرم سلام صلی الله علیہ وسلم ناراحت شد و این کار که این دست خانم شبیه دست مردان هست یعنی باید زینت رو رعایت بکنیم این یک حدیث اینجا داخل سنن ابی داود اومده این حدیث از صحیح بخاری بخونم داخل صحیح بخاری حدیثی هست که وقتی که آقا وقتی آقایون میرن بیرون وقتی که میخوان از سفر بگردن میگن که نگاه کن نری داخل خونه صبر کنید و زود داخل خونه وارد نشید چرا؟ لی تستحد دل مقیبا. تا اون خانومی که شوهرش خونه نبوده و مسافرت بوده آقا تشریف می آورد خودشو آرایش بکنه اونجا آمده لتستحد دل مغیبه یعنی موهای زاعد و بر بداره اونها باست تنفر بر بداره و تمتشتش شعصه و اون پراکنده حالی موهای جولد رو بر بداره آرایش کنه چقدر تاکید کرده اسلام؟ بگه آقا اینجا نیست خبرشو آقا داره می آید می داخل خونه نرو نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم از سفر برگشتن. سفر برگشتن نزدیک مدینه که رسید با لشکر جنگی بیرون از مدینه قیام کردن داخل شهر نرفتن گوه اینجا بشینی بعد شب وارد میشین. چرا؟ چون تا اون خانوم داخل شهر مطلع بشن که آقایون اومدن تا فرصتی برای رسیدن به خودشون آراج به خودشون پیدا بکنن نه اینجا برای آقا فرمودن حالا خود به خودت درس آرایشی بکن تا اینا دارن میرسند، اینها دیگه فوراً بیا این حال و بین میره. میده اونی خیلی زیاد منتظر قانون بوده اینجا رو ببینه کلا متنفر میشه نه بذایون ها به خودشون برسن آرایشی بکنن تمیز کنن تا آقایی که اونجا میاد اون شک منفی بر آقا وارد نشه اگه شوک منفی وارد شد، دلش رفت که رفت دیگه دوباره دلو برگردوندن کار خیلی سختی هست پس اینجا این هم فرمودند که نگاه کن این کار رو انجام بدهیم و جای دیگر نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم در مورد عبدالله ابن عمر ابن عاص همیشه همیشه که در چی بود روز ها روزه شب ها نواز بیخون خانوش هم شکسته بود اصلا بخودش نمیرسید. بهش گفتن چرا نمیرسی؟ فرمودند برای کی برسم این آقایی که من دارم هر روز روزی هست هر شب دستا نواز میخونه حالا برای کی باید آرایش کنم باید کسی باشه که حالا نیاز داشته باشه اونجا نبی مکرم اسلام فرموده و ان که علیک حق همسر حق داره حق را رعایت بکن از حق همین پیشو رفتن و حق دیگری است که آرایش کردن حق هست داخل خونه حقی همسران هست باید به خودشون برسن آقایون هم به خودشون برسن این که حالا هرچی اومد رو هر چی, چی مو بود تا هر کجا رفت که بره اینجوری نیست به خودتون برسی، موهارزی کنی، اگر ریشهارو ها رو تمیز کنی، منکان، لو شرف، یکریم، موها رو کنی، چر کنی، به خودتان برسید رسیدن، آرائش کردن، این حق زوجیت هست، تو از زندگی تاکی اینکه اون افت محفوظ باشد، اگر آقا زیبا باشد، قطعا خانوم دیگری نمی رود. و اگر اخانم به خودش برسی آقا هم به دیگه هم تفکری و خیالات رو جای که متمرکز نمیکنه پس این حقوق حفظ کردن عواطف زندگی اینها خیلی تاکید شده پس اما این آرایشات دیگه میکنی به شرطی در چارچوب بشه الا ما گفت آرایش کن اینجوری نه الا فرض موهارم آرایش کنی, کنی دوالا مثل آغایو نصف بزنید و بیاید که ما داری آرایش میکنی سنت هست اینجوری نه آرایش کردن به بسو صورتی که مخالف امور شرعی نباشند رخص نباشه، موها کوتاه نباشند و آقایون هم مثل خانمان نکنند و خانمان مثل آقایون خود را آرايش نکنند پس پوشیدن لباس زیبا داخل خونه مستحبه بپوشید اینها رو پیش آقایون زینت کردن به خود رسیدن از موها، از آرائشات اینها رو استفاده کردن برای آقایان این چیز مستحبیت این حق اونها هست و اینها رو انجام بدهید.